نقاشی پیکاسو، ورزای معمولی در سال‌های 1945 و 1946، پابلو پیکاسو مجموعه طرحهای قدرتمندی از ورزاها کشید. اگر ورزاهای او را به ترتیب پیچیدگی مرتب کنید، پیچیدهترین مورد طرحی واقع گرایان از ورزاست. تمام جزئیات در آن وجود دارد. سپس پیکاسو در مجموعه هجده طرح گام به گام تصویر قبی را ساده می کند. سایه پوست محو می شود، جزئیات ازولات ناپدید می شود، بافت هضم می شود، ویژگی بعدی تصویر کنار گذاشته می شود. در ورزای هجدهم یک طرح خطی می بینیم، تصویر سادهی با ده منحنی و دو بیزی، اما آن دوازده علامت خلاصه قدرت و نرینگی ورزاست. آشفتگی از بین رفته و جوهر اصلی مانده است. تصویر نهایی تنها نمونه مجموعه بود که پیکاسو آن را ورزانامید. نامید. با دورانداختن روشمند اجزای ای توجه خود را به مضمون اصلی معطوف می‌کنیم روش برانگیختن تفکر مؤثر کشف یک مطلب اساسی تصور کنید می‌خواهید مطلبی را بفهمید و آشفتگی‌ها را بزودایی تا جزء اصلی را جدا کنید هر مطلب پیچیده ای چند ایدهی محوری دارد. شما به دنبال ایده منحصر فرد نیستید. شما تنها یک ایده می خواهید. مطلبی را در نظر بگیرید و آن را به یک مضمون تقلیل بدهید. در واقع چه بسا این تمرین را در مورد خودتان امتحان کنید؟ به نظر شما اجزای اصلی خود شما چیست؟ جدا کردن اجزا می به تمرکز فراوان در تصمیمات زندگی منتهی شود. مثال تربیت کودکان تربیت کودکان نیازمند تصمیمات روزانه فراوان است توصیه شنیدن درباره هر طرح عملی نیست به جای آن یک یا دو هدف اصلی را مشخص و از آنها به مساوی راهنمای اقدامات خود استفاده کنید مثلا یکی از اهداف میتواند پرورش کودکان باشد چنانکه به متفکران مستقل تبدیل شوند و مسئولیت شخصی تصمیمات زندگی را به عهده بگیرند. اگر فرزند شما دائما در انجام دادن تکالیف خود ضعف نشان بدهد، هدف مسکور بر تصمیم شما تأثیر گذار خواهد بود. آیا راه حل مدت و ساده تر انجام دادن تکالیف او را انتخاب می کنید یا رویکرد دشوارتر ترغیب ترقیب فرزندتان به یادگیری مستقل را؟ اگر اهداف اصلی را در ذهنتان مرور کنید تصمیمات روزمره واضحتر می شود خواه پدر یا مادر و یا فردی دیگر باشد این چشمانداز می تواند به هر کسی کمک کند مثل دبیر، دانش آموز، متخصص، تاجر و حتی سیاستمدار تا به جای اهداف کوتاه مدت انحرافی بر اساس اهداف بلند مدت تصمیم بگیرد پس از جدا کردن اجزای اصلی به مرکز قرص و محکمی مجهز شده اید که می توانید بر روی آن بنا کنید و شاخ و برگ دهید. هسته اصلی کل ماجرا نیست، اما مانند ستاره قطبی شما را در طوفان و سختیها ها راهنمایی می کند. هسته چیست؟ اشتباه کدام است؟ آنچه در مرکز است را بیابید و کار خود را از آنجا آغاز کنید. می توانید با اعتماد به نفس در مرکز بیایید. آنجا چه هست؟ دو نویسنده گمنام این کتاب میگویند شما و هر کس دیگر پشتووری میکنید به این نکته اقرار کنید و از این مرحله پیش بروید ما نویسندگان کتاب عاشق هنریم اما متاسفانه شور و شوق ما از استعدادمان بیشتر است چند سال پیش هنگام بازدید از دانشگاه دنیسون در اوهایو با یکی از اساتید هنر ملاقات کردم و این فرصت را یافتم که از فردی کارشناس درباره نقاشی سوال کنم. از هنرمند پرسیدم جمله روشنگرانه ای درباره نقاشی بگویید. هنرمند که تا حدی از این سوال غیرمنتظره تعجب کرده بود، لحظه ای به فکر فرو رفت و پاسخ داد: آسمان به رنگ سایه است. ابتدا حرفش را باور نکردم. من برگر نیز مانند اغلب مردم تصور می کردم سایه ها خاکستری هند یا سیاهند. اما اگر از نزدیک نگاه کنید متوجه میشوید که سایه ها در واقع در فضای وسیع بیرون رنگیند، گرچه به رنگ ظریف و ملایم. این شم هنرمندانه فراتر از تماشای سایه ها برایم معنا پیدا کرد و درباره دیدن آنچه واقعا هست، به جای آنچه ظاهرا هست مطالبی به من آموخت. در زندگی خود هر روز سایه ها را میدیدم اما درباره شکل واقعی آنها اشتباه می کردم. سایه های رنگی نگرش کاملا تازه ای درباره دنیا به من داد. چشمنداز تازه ای که از هنر نقاشی فراتر است. هرگاه موضوعی را می بینید یا مفهومی را میفهمید در خصوص عینکی که از پشت آن به موضوع می نگرید آگاه باشید. باید فرض را بر این بگذارید که دچار پیش‌داوری هستید. چالش مقابل شما تشخیص و حزو پیش‌داوری یا فرض هاست و فعالانه بکوشید موضوع را از نو ببینید و بفهمید. خواه در مورد مشاهده ویژگی‌های فیزیکی یا احساس جنبه‌های هیجانی یا یادگیری مبانی مفهومی در هر صورت پذیرش و سپس حزو سوگیری و پیش‌داوری می‌تواند شما را به دیدن آنچه واقعا هست و غالبا مهمتر از همه کشف آنچه گم شده است راهنمایی کند. دو تجربه از دو کلاس هنر. تحصیل در رشته هنر به ما کمک می کند جهان را با وضوح بیشتری ببینیم. اینجا دو داستان کوتاه درباره ی چالش های پیش روی من در مقام دانشجوی تاریخ هنر را روایت می کنیم. در دوران تحصیل در کلاس تاریخ هنر قرون وسطا ته کلاس می نشستم و استاد موسن و بسیار خوبی به ما درس میداد به تصور دانشجویان راز دانش تقریبا بیکران او درباره کلیساهای جامعه گوتیک این بود که او واقعا هنگام ساختن آنها حضور داشته است روزی استاد اسلایدی از یک نقاشی متعلق به قرون وسطا نشانم داد و پرسید آقای استاربرد در این نقاشی چه میبینی البته نکته عمیقی به ذهنم خطور نکرد، تصویر صرفاً عجیب به نظر می آمد، کج و معوج بدن و حاله طلایی رنگ شبیه هلال رستوران مکدونالد طوری که شکمم به گارقور افتاد، اما می دانستم هنر قرار است معنادار باشد، پس کوشیدم از روی تحلیل هنری که با آن آشنا شده بودم تقلید کنم و جواب دادم، فکر کنم حاله نور نشانه ی چرخه حیات است که از تاریکی خلای آغازین بیرون می‌آید و با شکوه درخشان قص بر و دوباره در مقاک بیکرانگی فرو می‌رود. استاد محترم در کمال آرامش اما پرخاش کنان گفت چرتوپرد نگو و به ما بگو که چه می‌بینی. انتظار چنین واکنشی را نداشتم. اتفاق دوم زمانی رخ داد که سالها بعد در مقام استادی من برگر تصمیم گرفتم در دوره عمومی و مقدماتی تاریخ هنر شرکت کنم. استاد هنر ماهرانه نمایش میداد و درسها مسهور کننده بود. اوایل ترم استاد تصویری از یک راهب نشان داد که پشتش به تماشاگر بود کنار ساحل ایستاده و دریای آبی و آسمان باشکوه را مینگریست. استاد از افراد حاضر در کلاس پرسید چه می بینید؟ تالار سخنرانی تاریک غرق سکوت بود ما تا آنجا که در توانمان بود نگاه کردیم و نگاه کردیم و فکر کردیم و فکر کردیم تا از معنای نهان پرده برداریم اما به نتیجه نرسیدیم حتما از آن قفلت کرده بودیم او با عصبانیت زیاد به سوال خودش جواب داد این نقاشی یک راهب است پشتش به ماست ما کنار ساحل ایستاده است دریای آبی و آسمان باشکوه هم هست آهان چرا آن را ندیدیم او به این دلیل که تحت تأثیر قرار نگیریم، سؤال را بدون افشای نام نقاش و اثر او پرسیده بود. در واقع ما شاهد راهب کنار دریا اثر کاسپار دیوید فریدریش به سال 1808 تا 1810 بودیم. برای فهم بهتر دنیای خود، آگاهانه به آنچه واقعا میبینید اقرار کنید. فارق از اینکه چقدر پیش پا افتاده یا بدیهی به نظر آید، نه به آنچه حدس میزنید یا تصور میکنید. اقرار به آنچه واقعا می‌بینید شما را به آگاهی درباره آنچه هست و نیست وادار می‌کند اگر چیزی می‌بینید به آن اشاره کنید اگر نمی‌بینید ادعا نکنید که آن را دیدید صداقت و دقت درباره آنچه واقعا می‌دانید و نمی‌دانید شما را وادار به شناخت خلأ فهمتان و رفع آنها می‌کند یادگیری درست و پیشرفت در فصل مشترک آنچه واقعا می‌دانید و آنچه هنوز نمی‌دانید اتفاق میافتد. روش برانگیختن تفکر مؤثر آنطور که میبینی شرح بده سوالات، تکالیف، آزمونها و ارزیابی‌های شغلی درباره باره شماست متاسفانه اعتبار نسبی یا فشار اجتماعی قالبن شما را به تظاهر به بیش از آنچه واقعاً انجام میدهید تحریک می کند بنابراین در خلوت اتاق خود به تکالیف یا سوالات احتمالی آزمون نگاه کنید و ضعف و قوت های دانسته ها و نادانسته ها را یادداشت کنید به طور سنجیده از سرپوش نهادن بر خلع یا ابهام اجتناب کنید به جای آن جسورانه به قسمت های نیمبند یا ناقص فهم خود تاکید کنید اکنون حفره را پر کنید تشخیص و اقرار به عدم قطیت ها گامی بزرگ به سوی فهم قاطع و استوار است. مثال ارتباط اگر مقاله می نویسید، نوشته خود را مو به مو بخوانید نه فقط آنچه می خواهید به دیگران انتقال دهید. تظاهر کنید با برهان خود در مقاله آشنا نیستید و کلمات واقعی خود را بخوانید. کدام موارد گیج کننده یا ناقص است؟ اگر گمان می‌کنید با ایده ای آشنایید، اما نمی آن را به روشنی بیان کنید پس فرایند فوق خلع یا ابهام فهم شما را نشان می‌دهد. پس از اقرار و توجه به نقاط ضعف گزارش شما واضحتر و با مخاطب واقعی آن مرتبطتر می شود. هنگام ایراد سخنرانی یا شرح گزارش به جای آنچه به گمان خود به زبان میآورید از فرایند شنیدن سنجیده کلمات واقعی خود هنگام صحبت استفاده کنید. آنچه هرکس به آن باور دارد همواره درست نیست. باورهای رایج غالبا به کلی اشتباهند. ما بیشتر اوقات با تکرار و با استناد به صاحبان قدرت قانع میشویم و به سراغ مدرک و واقعیت نمی رویم. گرایش به پذیرش عوامل پیرامونمان تشخیص دانسته های واقعی ما را از آنچه به گمان خود میدانیم دشوار میکند. برای توضیح تمایز سقوط گرانشی را مثال می‌زنیم. حدود سال 340 پیش از میلاد ارسطو از این ادعا دفاع می‌کرد که اجسام با آهنگی متناسب با وزنشان سقوط می‌کنند. به عبارت دیگر او گمان می‌کرد اجسام سنگینتر سریتر از اجسام سبک‌تر سقوط می‌کنند. مردم این ادعا را به دو دلیل پذیرفتند. یک منطقی به نظر می‌آمد، دو گفته‌ی ارسطو بود. ترکیب ظاهر معقول و نظر اولیای امور دستورالعملی برای جانبداری شدید و محکم شده است. مردم حدود دو هزار سال به توصیف دو از اجسام افتان معتقد بودند. سرانجام در قرنهای شانزدهم و هفدهم مردم به جای اولیای امور به سراغ مدرک و شاهد رفتند. هنگام شرح تاریخ غالبا این اتفاق رخ میدهد که افسانه تغییر آنی چشمنداز، جایگزین واقعیت پیش رشد یابنده می شود در این مورد افسانهای درباره گالیله دگرگونی فضاینده چشمنداز را در آزمایش سرنوشت سازی خلاصه می کند که گالیله به ظاهر اما نه در واقع آن را انجام داد بر اساس این داستان گالیله در سال 1588 نظریه ارسطو درباره اجسام افتان را به این صورت به چالش کشید که در حالی که گلوله ی توپ آهنی و گوی چوبی سبکتر اما هم اندازه ای را به سختی با خود می‌کشید و بالا می برد، از برج کج پیزا بالا رفت. دو گوی را همزمان پایین انداخت و هر دو جسم در کمال شگفتی مردم به ویژه گردشگران بیخبر که اختار را نشنیده بودند همزمان به زمین اصابت کردند و ثابت شد اجسام سنگین تر سقوط نمی کنند. در واقع صرف نظر از مقاومت هوا اجسام فارق از وزن خود با آهنگ یکسان سقوط می کنند. داستان واقعی در آن زمان و اکنون این است که مردم بلا فاصله به شاهد و مدرک تکیه می کنند نه به اولیای امور. مردم چگونه می توانند هزاران سال به ادعاهای کاذبی معتقد باشند که اثبات نادرستی آنها به آسانی ممکن است؟ جواب افراد به ایده های ایمامی آورند که آشنایان و شخصیت های مورد احترام آنها به زبان آورند یا به آنها باور داشته باشند. باید مبانی دیدگاه های خود را خیلی خوب بشناسید. اگر تنها به این دلیل به مطلبی باور دارید که گفته ی شخصی دیگر حتی اگر استاد باشد است، نباید به فهم خود اعتماد کنید. داستان گالیله نمونه ای از رویکرد سالم درباره حل مسئله با کمک مدرک و سند است فارغ از اینکه چه کسی نظر مخالف دارد. به دنبال مدرک و سند باشید و تا زمانی که به علت موضوع پی نبرده اید دست از کار نکشید. ویل راجرز یا مارک توان یا شخص دیگری می گوید آنچه نمیدانید شما را دچار دردسر نمی کند آنچه میدانید چون این خاصیتی دارد از کجا می دانید؟ آگاهی از مبنای دیدگاه ها و باورهایتان گام مهمی برای فهم بهتر شخص شما و دنیای شماست. دیدگاه باورها و دانش خود را به طور منظم وارسی کنید و درباره آنها بپرسید. از کجا میدانم؟ فهم بر کدام مدرک استوار است؟ از منابع دیدگاه های خود آگاه شوید اگر منابع شما ضعیف باشد، باید بدون تعصب با این احتمال مواجه شوید که دیدگاه یا دانش شما نادرست است. به طور منظم به دنبال مطالبی باشید که در مورد آنها به بازاندیشی دیدگاه خود نیاز دارید. برخورد دور از تعصب با ایده‌های خلاف انتظار می‌تواند کلید کشف رایحل های بدی و فهم عمیق باشد. اما چگونه می‌توانیم از آن فرصت‌ها استفاده کنیم؟ ما یقیناً از روی عمد تعصب نمی ورزیم. بنابراین چگونه می توانیم از تعصب ناخاسته خود خلاص شویم و دنیا را با جانبداری کمتر مشاهده کنیم؟ ابتدا می به سادگی ایده های دیگر خود را به صورت فرضی و موقتی آزمایش کنیم. به عبارت دیگر نگویید خب الان عقیده را درباره مراقبت های بهداشتی تغییر می دهم. به جایش بگویید تا روز بعد یا حتی 20 دقیقه بعد وانمود می‌کنم عقیده‌ام مخالف اعتقاد همیشگی هم است حتی اگر بدانم این اقدام احمقانه است و می‌خواهم بدانم عقاید تازه به کجا منتهی می‌شود با این راه راهبرد می‌توانید بدون غلبه بر پیش‌داوری‌های ریشه‌دار اخلاقی یا نهادی درباره ایده‌های نو کاوش کنید دنبال کردن ایده‌هایی که به نادرستی آنها آگاهید نیز می‌تواند روشنگر باشد زیرا با تقییب پیامد ایده های نادرست به این موضوع بهتر پی میبرید که چرا باور اصلی شما درست است یا به بینش های نو و غیر منتظره دست میابید که با دیدگاه اصلی شما مقایر است. نیلس فیزیکدان قرن بیستم، هنگام رهبری گروهی از دانشمندان برای فهم مکانیک کوانتومی از این رویکرد استفاده می کرد. مکانیک کوانتومی توصیف عجیب ذرات بنیادی در فیزیک است. ادعای آن درباره سرشت طبیعت عجیب و خلاف شم ما درباره عالم است. بنابراین این، در تلاش برای تصمیم گیری در این باره که آیا مکانیک کوانتومی توصیف درستی از دنیای فیزیکی ماست، این تمرین را انجام داد که یک روز درستی مکانیک کوانتومی و روز دیگر نادرستی آن را فرض کند و پیامدهای هر دو را بررسی کند. او با تغییر دیدگاه خود بیطرفانه در هر گزینه کاوش میکرد. اتفاقا دست آخر مکانیک کوانتومی را به منزلی توصیف بهتر نسبت به گزینه دیگر معرفی کرد. روش برانگیختن تفکر مؤثر گزینه ها را بیازمایید و گزینه مناسب را بسنجید. دیدگاهی را برگزینید که دیگران به آن باور ندارند که آشکارا اشتباه میکنند. ساعتی دیدگاه فعلی خود را بپذیرید و درباره پیامدهای های آن فکر کنید و ساعتی بعد دیدگاه دیگری را برگزینید و آن را ارزیابی کنید. بکوشید پیشداوری نکنید. در برابر دیدگاه های رقیب تعصب نورزید. در حال حاضر قصد تغییر ندارید. هدف این تمرین فهم واقع تر دیدگاه های دیگر است. در نتیجه آن شاید عقیده ای را تغییر بدهید. اما به احتمال زیاد صرفاً به فهم این مطلب دست میابید که چرا دیدگاه‌های دیگر نزد دیگران مقبول است اگر یک ساعت زمان زیادی است بازه‌های 15 دقیقه‌ای را برگزینید مثال طرف دیگر بنشینید در گرد همایی یا مهمانی شام گروهی که دیدگاه مقابل شما را دارند شرکت کنید شاید ابتدا احساس راحتی نکنید اما بلا فاصله به دلایل نقض فکر نکنید و به جای آن گوش دهید و بکوشید دیدگاه نو را درک و مشاهده کنید. چه بسا از نو با آن ارتباط برقرار کنید چه چیزی از قلم افتاده است؟ تمرکز برای دیدن آنچه واقعا مقابل شماست به جای آنچه به گمان خود باید ببینید کار دشوار است. اما چالش بزرگتر مشاهده اجزای گم شده است. یکی از امیغترین شیوه‌های های مشاهده واضح دنیا جستجوی آگاهانه خلح ها و خفره هاست. آنچه در دنیای هنر فضای منفی نامیده می شود. یعنی فضایی که موضوعات و مطالب مورد علاقه را احاطه کرده است. در تجارب روزمره و فکری ما خلح از انواع مختلف وجود دارد. اگر موضوعی را مطالعه می کنید، آن دست از مفاهیم را که به طور کامل نمی‌فهمید، مشخص کنید. آن مفاهیم در واقع شاید ایده هایی باشند که به گمان خود در کلاس قبل یا مقطع دیگری از زندگیتان بر آن مسلط شده اید اعتراف صادقانه به وجود خلح ها در دانش و فهم شما اولین گام مهم برای پر کردن آنهاست البته سؤال دشوارتر این است از کجا می توانید آنچه را واقعا است مشاهده کنید با افزودن صفت خلح ها را آشکار کنید بیایید به زمانی برگردیم که رنگ واقعی در عکس ها وجود نداشت. در آن دوره مردم تصاویر را برخلاف امروز که از اصطلاح عکس سیاه و سفید استفاده می کنیم، عکس می نامیدند. امکان رنگی کردن عکس وجود نداشت و افزودن صفت سیاه و سفید لازم نبود. اما فرض کنید پیش از ظهور عکاسی رنگی از عبارت سیاه و سفید استفاده می کردیم. با تاکید بر این واقعیت از محدودیت های فعلی آگاه میشویم و ذهن خود را به روی امکانات نو و فرصت های بالقوه می گوشاییم. عنوان جنگ جهانی اول تنها پس از درگیری عمیق ما در جنگ جهانی دوم به آن جنگ داده شد. پیش از دوران مخوف دهه 1940، جنگ جهانی اول صرفاً جنگ بزرگ یا بدتر از آن، جنگی برای به پایان رساندن تمام جنگ‌ها نامیده میشد. اگر در سال 1918 آن را جنگ جهانی اول مینامیدیم چه میشد؟ این عنوان احتمال وقوع کشمکش جهانی دوم را برای حکومتها و مردم به واقعیت بزرگتری تبدیل می‌کرد. و شاید به تصمیم گیری های سیاسی بهتر در سطح بین المللی منتهی می شد. در سال 1937 سیلوان گلدمن مالک خاربار فروشی کوچکی تصمیم گرفت مشتریانش را بهتر بشناسد. او در مورد توان خرید مشتری چون این فکر می کرد: هر کسی فقط آن چیزی را می خرد که بتواند حمل کند. آقای گلدمن با این بینش و اشتیاق به خرید بیشتر مشتریان یک صندلی تاشوی چوبی برداشت و چرخهایی به پایههایش وصل و یک سبد روی نشیمنگاهش نصب کرد. گلدمن چرخ دستی را اختراع کرد. در نتیجه نه تنها پول بیشتر سرازیر شد بلکه این اختراع امکان جابجایی بیشتر کالا را در فروشگاه های بزرگ خرد فروشی ها، های وسایل الکترونیکی و وسایل منزل در آینده فراهم کرد او تنها با توصیف آنچه وجود داشت موفق شد نادیده‌ها را ببیند روش برانگیختن تفکر مؤثر نادیده‌ها را ببینید موضوع یا مبحث مورد مطالعه خود را انتخاب و صفت یا عباراتی توصیفی به آن اضافه کنید مانند صفت اول به جنگ جهانی که به واقعیتی درباره وضعیت یا در حد مطلوب به ویژگی محدود کننده یا بدیهی اشاره می کند. سپس بررسی کنید آیا عبارت شما امکانات یا فرصتهای تازه مطرح می کند یا خیر شاید اندیشیدن به این تمرین به صورت بازی تدائی واجه ها مفید باشد مثلا اگر دانش آموزید می واجهی چون نیم سال را در نظر بگیرید و چند صفت که به ذهنتان خطور می کند، فهرست کنید. مثلا، مشغول، خسته کننده، یک نواخت، هگه جان انگیز و از این قبیل. از صفتهای های تازه یافته خود، برای خلق بینش جالب و برانگیزاننده استفاده کنید که در غیر این صورت به آنها توجه نمی کردید. مثال، آموزش کارولین به مسائلی در رشته آموزش فکر می کرد و تصمیم گرفت از تمرین افزودن صفت استفاده کند. او به سرعت نظام آموزشی فعلی را آموزش فردی نشده توصیف کرد. او با این نامگذاری بلافاصله به گستره سازگاری آموزش شاید در آینده با مسائلی چون تفاوتهای فردی شیوه های یادگیری، فراگیری فردی، اهداف آموزش و از این قبیل فکر کرد. این افکار همگی تحت تأثیر توصیف او از روش های تدریس فعلی ما شکل گرفته بود. اندیشه های نهایی هرچه عمیقتر بهتر امیق یاد بگیر توصیه بزرگیست اما واقعا به چه معناست؟ در حقیقت بسیاری از ما مطلب را امیق فرا نمی‌گیریم. پس از ناکامی در امتحان دانش آموزان به ما می‌گویند. بلد بودم اما نمیتونستم توضیح بدم و ما پاسخ میدهیم اگر نمیتوانستی توضیح بدهی پس بلد نبودی فهم عمیق موضوعات ساده به معنای تسلط بر اصول ایدهها و روشهای بنیادی و سپس خلق بنیاد قاطع و استواری است که روی آن بیستید جستجوی اصول چارچوبی فراهم میکند کند که فهم شما بر آن بنا می شود مشاهده آنچه آن چه واقعا هست فارغ از پیش‌داوری به شما امکان بست فهم درستتر از دنیای خودتان را میدهد و مشاهده آنچه وجود ندارد به شما کمک می‌کند حدود دانش خود را تشخیص بدهید امکانات نو را بشناسید و برای مسائل پیچیده راه حل‌های نو خلق کنید از طبیعت تا جامعه دانشگاه روابط شخصی کسب و کار ایده‌های انتزاعی و حتی ورزش ارزیابی عمیق موضوعات ساده و آشنا اولین گام سمربخش یادگیری، تفکر، خلق و حل مسئله است. اگرچه امیق دیدن استعاره ای ارزشمنده است، اگر دنیای آشنا را زیر زر ببینیم، واقعیتی عینی نیز هست. هنگام مشاهده اشیای معمولی زیر زر و سپس میکروسکوب ناگهان نه تنها با دنیاهای نو بلکه با توضیحات و اصول سامان بخش دنیای بزرگ مقیاس خود نیز مواجه میشویم. ما فهم را به عنصر خاک نسبت میدهیم زیرا هنگام دستیابی به فهم غنی و پربار به اصطلاح روی زمین سخت و استوار ایم. خاک یا زمین زیر آن چیزی است که روی آن ایم. هنگام مشاهده با عمق و وضوح بیشتر دنیای آشنای ما گشوده میشود. و حاصل خیزی، ساختار و معنایی را آشکار میکند که پیش از آن هرگز ندیده بودیم یکی از اهداف این کتاب توصیف این مطلب است که چگونه میتوان ایده های اصلی ساخت و به شما نشان میدهد چگونه میتوانید مسائل قدیمی را حل و دنیاهای نو خلق کنید ما فرایندی را تبلیغ میکنیم که از محیط عادی و راحت اطراف شما و مبانی آشناتر آغاز آغاز میشود و شما را به جستجوی عمیق ویژگی‌های معمولاً درک ناپذیر تشویق می‌کند این راهبرد ذهن شما را برای موفقیت در هر کار از فهم درس حسابان و تهیه مقالات برانگیزاننده تا هر مورد دیگر آماده می‌کند آنچه بیش از هر چیز درباره این دنیا می‌دانید موضوعات، اعمال و ایده‌های آشناست که بخش عمده تجربه زندگی شما را تشکیل می‌دهند اما آنچه به طور منظم انجام نمیدهید، ارزیابی ویژگیهای های متداول زندگی با ذهنی کاوشگر است. شما می توانید آگاهانه و با عمق بیشتر به موضوعات، اعمال، ایدهها و تجربه های آشنا بنگرید و به این ترتیب سفر اکتشافی شما آغاز می شود. چیزهای آشنا مملو از عمق و شگفتی نادیدند. پریشان حواسی را کنار بگذارید آنچه واقعا هست را ببینید و نامرعی را مرعی کنید